آیا همه افراد هپنوتیز میشن؟ آیا ممکن کسی هیپنتیزم نشه؟ آیا ممکنه شما بخواید خودتون رو هپنوتیز کنید و موفق نشید یا اینکه بخواید کسی رو هپنتیز کنید و موفق نشید؟ آیا کسانی هستند که س قابل هپنوتیز نیستن؟ پاسخ این سوالات چیه؟ این سوالاتی که گفتم که سوالاتیه که یکی از دست سوالاتیه که خیلی ها، براشون مطرح میشه خیلی ها درگیرش میشن و شاید پاسخهای مختلفی رو هم شنیده باشید توی جاهای مختلف من توی این فایل صوتی به شما پاسخ خیلی دقیق و کاملی رو خواهم داد که کاملا با این موضوع آشنا بشید حقیقت اینه که هر کسی هیبنوتیز میشه هر کسی هیبنوتیز میشه هر کسی میتونه خودش رو هیبنوتیز کنه و در حقیقت بذارید اصلاح کنم جمعدم رو هر کسی داره به صورت روزمره و هر لحظه زندگیش خودش رو یپنوتیز می کنه و تا دیگران رو هپنوتیز می کنه. شما دائما دارید خودتون و دیگران رو یپتیز می کنید. بدون اینکه بدونید این چه جوری و بدون اینکه بدونید آیا این روشی که به کار گرفتید به نفع منافع و اهدافتون هست یا نه. و بنابراین کسایی که فکر میکنن که نه کسی من نمیتونونه هپنوتیز بکنه من خیلی حواسم جمعه و این اصلا نمیطور نیست. اتفاق خیلی هایی که این باور رو دارن دقیقا همون کسایی هستند که به شدت هیپنوتیزم میشن و شدن و خودشون حواسشون نیست و علت این هست که با تعجب ماهیت زندگی و آفرینش و هستی ذاتن هر لحظه همه ماها داریم توی یک تونل واقعیت توی یک واقعیت هیپنوتیزمی یا هیپناتیک زندگی میکنیم و دیگران رو هم وارد تونل‌های واقعیت مختلف میکنیم که خیلی ها این کار رو بدون که آگاه باشن انجام میدن و خیلی اوقات به ضررشون تموم میشه و بنابراین کسایی که فکر میکنن که اصلا هیپنوتیزم نمیشن و غیر و خیلی حواسشون جمعه و اینها اصلا چندان چیزی ما نداریم شما هر کسی رو میتونید هیبنوتیزم کنید بله ممکنه در عمل و بر اساس شرایط خاصه یه مورد خاص که دارید مثلا هیبنوتیزم میکنید کسی رو شرایط محیطی و همه چیز جور خاصی است ممکنه کار سختر باشه اما اصولا همواره هر کسی میتونه هیبنوتیزم بشه و علت اینه که ذات زندگی و حقیقت زندگی همینه